جلسه بیست و هفتم از درس قواعد فقه فکریاسم هفته دیه 1400 هفته دوازدهم ماه آموزشالیه امام رضا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلّا الله علیه و سیدنا و نبینا علی القاسی محمد و علی اهل ویت الطهیرین المحسونین سیم مبقی الله فی عربانه الله فل عرزین روحی برواح العالمین الله الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به پیانبر گرامی و احل بیت اتخار علیه همه السلام بحثمون را آقاز ما ارز کردیم که برای یکی از بحث ها در بحث اهم و مهم شناسی اهم و مهم که چه موردیم اهم است چه موردی مهم خب، یک مصداق شناسی نقلی داریم که با تمسک به نصوص اثبات کنیم یک مورد اهم است و یک مورد مهم حالا این مصداق شناسی که اینجا میگیم یه مقدار معنای عام طبیعتا پیدا میکنه مثلا بگیم Salat مهم است یا سوم حالا مصداق یه معنی عام غیر از اون مصداق این سالات مهم است یا اون سالات اونون عام که مثال زریم مثلا در ولی بله ولو که تعبیر تزاوم به کار برده نمیشه به خاطر اینکه مستبت اما با نگاه وسیع که بخوایم بگیم برخلاف اهم و مهم ببینیم اینجا برفرض از این منظر بخوایم وارد چیم بعد بگیم آقا این مقوله مهمتری اون از راه نصوص سه تا راه سه تا راه عام یکی تحلیل محتوای نصوص و استناد به اونها ممترح کردیم که توسط به تسریحات در اونها هست تمسک به زهورات چه زهورات مفردات یا زهور مجموع فقرات یا زهور مجموع نصوص و روایت متعدد. یکی هم تمسک به ملازمات لفظی عرفی این نصوص راه مکمل عنوان در واقع یک نکته مؤثر که همه جا بهش کار داریم خلاصه تمسک به ارتکازات یا تناسب حکم و موضوع یک راه عام و بحث بعدی تمسک به استدلال های فقهی برای اهم و مهم که با سقر و کبرا چیدن‌های متفاوت ما بیایم اثبات بکنیم یک چیز عام است و مهم خب آقا حالا فیل جمله چه چیزهای عام و چه چیزهای مهم است توی نصوص چقدر می توانیم بعضی موارد رو مرحوم ناینی لیست کردن از این چیزهای مهم برجسته سه مورد رو میفرمایند که خلاصه عام نکته اولش این که اون دو طریق رو میگن و مسئله طول اهمیت رو عربی باید تلقی کنیم یعنی اهم بودن ولی تو فارسی میگیم اهمیت فلان چیز یعنی جون مهم بودن مسئله طول اهمیه یختلف به اختلاف ما من منالعدل عدله چی میگه و مناسبات الحکم و الموضوع اون راه دوم آقا این حکم با این موضوع ت... چه تناسبی داره همیشه از این مناسبات حکم و موضوع و به تعبیر دیگه با تمسک به ارتكازات ارتكازاتی که مناسبات حکم و موضوع رو بیان میکنه. در واقع اگر ما بخوایم اون ارتكازات رو تحلیل کنیم رسیم به اون فقرات با تحل... با شناساییه شناسایی و تحلیل ارتكازات دوران خلاص سودور نسوز ارتكازاتی که در اون فضا بوده اون ارتكازاتی که در دوران صدور نسوز وجود داشته شما خلاصه می توانیم ما کشف این مقوله رو بکنیم می توانیم خلاصه تناسب حکم و موضوع یا عدم تناسب اون رو کشف کنیم بعد در استدلال ها مثلا استفاده بکنیم وارد استدلال بعد حسابش بکنیم یا در تحلیل اون محتوای نصوص استفاده بکنیم این مورد توان خلاصه این تحلیل ارتكازات می توانه در در واقع تحلیل نصوص استفاده بهینه داشته باشه مثلا چی میخوایم ببینیم مثلا اطلاق داره یا نداره میخوایم ببینیم مطلق یا نه اراده اطلاق شده یا نه کشف در واقع اطلاقات و تقییدات می توان استفاده خوبی بکنه یا این ظاهرش مطلقه ولی با توجه به ارتکاز عمومی مطلق اراده نشده برخی ارتکازات میتوانه در واقع ارتکازات میتوانه تذیغ کننده در واقع مراد گوینده باشه برخی ارتکازات میتوانه برعکس عمل کنه میتوانه توسعه دهنده در واقع مراد گوینده باشه اینه مسئله مهمه اگر شما ارتکاز رو به فهمید بگیدون مطلق نیست و مراد خلاصه مزیقه و به قبیر دیگه خلاصه موضوع خلاصه محدود و مقید موضوع رو شما محدود میکنید چگونه میگید آقا این ارتكاز اونجا تون فضا این یک چیزی دیگه در نظر بوده موضوع یا حکم میتوانه مطلق معرفی نشه یه جور دیگه در واقع بگیم مقید خلاصه کلاسه تلقیشه چونان که برعکس اونورشم وقتی ارتکازات میتونه توسعه دنده باشه به تعبیر دیگه برخی موضوعات یا احکام موجود در قضایای شرعی ظهور متفاوتی داشته باشند ظهور ظهور اولیه برخی موضوعات یا احکام موجود در غزای شرعی میتواند محدود و مقید باشه اما با تحلیل ارتكازات توان فهمید که در واقع در این موارد موضوع یا حکم مطلق است خب یه مغوله جدیه پس تحلیل ارتکازات کمک میکنه حالا اینجا در مجموع ببینیم آقا چند تا ما حکم کلیه اهم داریم پس این و مسئله تال اهمیه اختلف به اختلاف مای استفاد و منال عدل یک و مناسبات الحکم و الموضوع پس ببینیم یه موقع ما میگیم آقا عدل چیه کتاب سنت عقل اجماع پس ارتکازات کو این مناسبت حکم و موضوع چرا نیوردید این یه جوری متمم ولی باید این رو خلاصه جدی بگیریم حالا خروجیش چیه؟ چونگه متفاوته می فرماید فما... سه مورد برجسته رو میگن اونجایی که حفظ بیزه اسلام هست یک طرف و طرف دیگه مسائل دیگه دن آقا حفظ بیزه اسلام بر هر مورد دیگه مقدم میشه فماکان علیه حفظ بیزه تل اسلام یقدم علا کل شیع پس این به فرض بگیم دو تا دلیل داره میگه یکی میگه سله یکی میگه احفظ الاسلام خب کلقوم بیان قبلی ما اگر بخوایم در نظر بگیریم این دلیل مطلق است اونم دلیل مطلقه میگه آقا سله سله خب باشه سله میگیم به احفظ بذاته الاسلام اینم مطلق این دوتا میکنه در قدم محبت با هم تنافی نداشته باشن یه جایی میبینیم تضاهم میشه خب در مقام تضاهم اگر بتوانیم در بریم از مجموعه تضاهم در خیلی کمکه کار اصلونه ولی اگه نشود یکی باید مقدم کنیم مثلا شما فرض بگیریم آقا اگر سالات حالا ممکنه مدل های دیگه هم داشته باشه مثلا سلات با تمام شرایطش مثلا در نظر بگیریم اگر حفظ بیزه اسلام مسلمین خلاصه در خطر بیفته ممکنه این باشه شما پنهانکاری کنید تقیه کنید نماز رو اینجور نخونید خب میگیم نماز رو خلاص تقییه ای بخونم میگیم حفظ بیزه اسلام در اینه که شما الان اگر شما کشته بشیم این کلید این اسلاحه هستی رو شما رفتی از آمریکا دزدیدی و آوردی اگه شما کف کشته بشی میفته دوباره دست اونها خلاصه پس شما رو مباعد حفظ کنیم اگه نماز بخونیم میفهمن شما آمریکایی نیستی خب میگیم پنهان بخوان یه دستکاریش بکن پس در واقع با این داره مقدم میشه خب این که دلیلش مطلق بود اونم مطلق بود آ کجا فهمیدید اینجا از سنخه اون حکم و موضوع ما میفهمیم که آقا اگر اون اسلام مثلا حفظ نشه اون سلاته هم دیگه کلا از بین خواهد رفت در واقع یه جوری تحلیل لوازم میکنیم تحلیل خود اون حکم و موضوع میکنیم این یه مقداری به عقل و اینا هم ممکنه شما زمینش بگید داری می میکنیم ولی حتی دقیقا به ارتکاز ارتکاز عمومی این است که این اهم است این در واقع ارتکاز که اینجا تمسک میکنیم یعنی کشف میشود که لسان دلیل در ظاهر مطلق است خب اگر خلاصه با کشف در واقع ارتکاز اگر اینجوری بگیم اگر یک حکم نزد خلاصه مخاطبان حکم به عنوان حکم اهم تلقی می شده است و در واقع این گوینده بوده که طبق اون ارتکاز اونو پیش ورز گرفته و گوینده با توجه به ارتکاز عمومی سخن گفته و سخن خود رو متلق ارائه داده این نتیجه چیه؟ اینجا دیگه این اطلاق معلوم شه اراده نشده. می توان کشف کرد که در از چه طریقی با توجه به این ارتكاز عمومی می توان کشف کرد که مراد او مطلق نبوده و موارد خاصی رو در نظر داشته یا اون که چی یا اون که برخی از موارد رو از گردونه خلاصه بحث خارج میدانسته از شمول اون بیان خارج میدانسته و منظورشون نبوده نسبت به اونم خلاصه شما برو انجام بده پس می توان کشف چی کار کرد در واقع با تحلیل ارتکاز میفهمیم آقا این اطلاق نداشته این خیلی مهمه پس الان این مورد دوم سوم از کنم و ماکانم این حقوق ناس یقدم علا غیره حقوق ناس بر غیر حقوق ناس مقدمه معموله این مقابل حقوق ناس حقوق الله میذارن اینجا هم طبیعتا علا غیره ممکنه به این بخوره ممکنه بگیم علا حقوق مثلا برخی افراد بر حقوق یه فرد مورد سوم، اونهایی که به آب رو و اونهایی که به دماغ برمیگرده گرده موجه خلاصه خلاصه یه دروغ مثل اطامیز بگیم مثلا دروغ فرض کنیم حرمتش مطلق باشه اگر نگیم حرمتش مطلق اون یه حرف دیگه است اگر بگیم حرمتش مطلقه این برم حرمتش این طرف هم حفظ دماغ مطلقه حفظ فروژ مطلقه الان این برون مقدم میشه. این هم مورد سایر موارد میان غیر از این سه مورد پس یکی حفظ بیزه اسلام یکی حقوق مردم یکی دما و فروج اینا بر سایر موارد مقدم میشن و اما فیما ادازالک فا استفادتال اهمیه یهداج الا ملاحظت المورد و ملاحظت العدلند ادله خاص رو باید ببینیم خب این موارد به هر حال یه موارد خاصی که بعض از مسادیقی این هم می توانیم پیدا کنیم خب این یک در واقع تحلیل در واقع شناسی عقلی بود ما عرض کردیم به نقلی بود از این مستاق شناسی عقلی هم می توانیم داشته باشیم بعض از هم فقراتی ما قبل از ذکر کردیم به این کمک می کنه حالا اون بعض از اون ارتکازات یه ذره به عقل نزدیک میشه اینم هم باید در نظر داشته باشیم خلاصه تو مستقشناسی یه ذره تفکیک این خودش یه جای ممکنه خلاصه نکته کلیدی باشه بس اینجا تحلیل ارتكازات یه مسئله مهمی بود و بعد خلاصه در مستاق شناسی تأثیر تاثیر خاص خودشو داره این تاثیر تحلیل ارتكازات در مستقشناسی شناسی نقلی اهم و مهم اما مستقشناسی شناسی عقلی چی بعضی رو قبلا گفتیم خب اینجا آیا ما می توانیم نمی توانیم فعل جمله می توانیم بگیم امکانش هست خب بس ولو به صورت مستق... ولو به صورت محدود یه جایی هم احتمال در ولی آیا مطلق می توانیم در همه موارد امکانش هست خیر چرا چون علم ما ناقصه محدودیت عقل از امکان وقوعی تشخیص اهم و مهم در بسیاری از موارده اما آیا هیچ جا نمیتوانیم نه نمیشه بگیم از اون طرف توانمندی در واقع محدود عقل رو داریم خب پس ما یه بحثی در وقوع داریم یه بحثی در چی؟ خلاصه اصل امکانش اصل امکانش به نظر میرسه توانمندی محدود عقل از منظر خلاصه امکانسنجی در واقع بگیم امکان امکانسنجی عقلی نظری قبل از اون وقوع امکانسنجی نظری رو بگیم می بینیم توانمندی عقل کمه خب حالا تو اون کمش تو همونجا چی؟ اونجا هم امکان وقوعی یکی این که بگیم اصل مسئله مانع داره یا نه در واقع امتنا داره میگیم نه امتنا نداره در واقع توان خلاصه امکان عقل هست و عدم امتناه ذاتی بگیم امکان سنجی ذاتی داریم امتناه ذاتی داریم امکان ذاتی امتناه ذاتی امکانش هست اما محدوده و عدم امتناه اینجا مشکل مانده اما در وقوع اینا محدوده درسته ما اصلش گفتیم ولی همونجا اصلش محدود بود این وقوعش هم محدود خب حالا ما این مقوله رو خودمون حس میکنیم که برای چقدر توان داریم ولی بعضی موارد هم میبینیم خب مرد اشاراتی هم قرار گرفته ببین مثلا در حضرت امام یه مثال بر جالب نجات پیامبر واجب است یکی میخواد تلورش کنه یکی یا مثلا در جنگ ما باید دفاع کنیم یا به حال از پیامبر اگر این کار مستلزم یه حرامی باشه مثلا در جنگ من میبینم به پیامبر میخوان حمله کنن اگر من بخوام برم از زمین قصبی برم یا مثلا باید یه نفر هول بودم به خور زمین دورور من گرفته شده امکان نداره ولی یکی هول بدم ممکنه به خور زمین دستش هم بشکنه یا اذیت بشه حداقل ولی اگه این کار نکنم پیامبر نجات پیدا نمیکنه هیچ کی आवाزش نیست من فقط دارم میبینم میخوان یه نیزه به طرف پیامبر پرد کنن خب حداقل اون اهم بر ارتکاب بعضی محارم حداقل اما میفرما نه مکاسب محرم جلد دو صفحه سد و نوود و چار سد و نوود و پنج نعم فی مایزا کنه وجود و شیعن مبغوزن مطلقام و یجب علا کل مکلف دفعه یکون من قبیل تزامل مختزیات یه چیزی مبغوز مطلقه وقتی مبغوز مطلق باشه من باید کلن دفعش کنم این میشه از سنق تزامل مختزیات بعد مثاله که اشاره کردم می‌فهمید فیضات توقفه اینجا و نبی صلی الله علیه و آله علی و سلم میت ظالمن اراده قتل لهو الا شرب الخمر او غیری من المحرمات یجب عقلا اینجا به ارتکاب محرم چون که اون مبغوض مطلقه اقل میگه که آقا باید شما خلاصه بدی نجات بدی پس اقل هم در واقع چه کار میکنه؟ روش داره برای خودش درسته؟ عقل همینجور کتره که نمیفهمه عقل در واقع روش های خودش رو داره روش های کشف اهمیت روش های عقلیه کشف اهمیت چیه؟ الان تو این مورد دکتری خیلی قشنگ توجه کرده اینجا چیکار کرده تمسک به لوازم احکام عقل تمسک کرده درسته یک مستندش ممکنه شرعی باشه اون کار نده اینجا استدلالش عقلیه به چی تمسک کرده به لوازم احکام تو اون قبلیه در واقع ما میگفتیم استدلال کنید اون استدلال های مثلا بیان لفظی رو تفکیک کردیم این اونجا یه پاش به نقل برمیگاش ولی در واقع باید بگیم اون استدلاله چه بسا چون که تماثل به لوازم احکامه لوازم یا بسیه لوازم لفظی اگه‌ای باشه یه جور میشه استزهار در واقع اونجا ما استزهار میکردیم خب هم اون قسمت حتی تماثل به در واقع اون قسمت قبلی هم ارتکازات هم می تکمل مکمل استظهار درسته؟ خب اینجا هم در واقع نوع دومه تکملی استظهار اون یه بحث دیگه بود اون ولی اون سومی چی بود؟ سوامی دیگه تناس در واقع راه تمسک به اون آخری تمسک به استدلال سوامی به منعه که اونا دستبندی کردیم تمسک به استدلال های فقی یه سره چه استدلال های کاملا نقلیه یه سری استدلال‌های نیم عقلی، یه سری مقدمات عقلی، یه سری مقدمات نقلیه الان اینجا تو این مورد ممکنه ما بگیم چیکار کنیم؟ مثلا لوازم احکام رو در نظر بگیریم. اگر یک موردی مثلا مبعوز مطلقه این یک از لوازم مبغوظ مطلق باید کلن نفت بشه وجوبه در واقع وجوب و ضرورت پرهیز مطلق از مبغوظ مطلق درسته اگه پرهیز مطلق داریم یعنی چی این یعنی مقدمه پس این الان خودش یه روشیه می فرمایند. که توقف اگر توقف داشته باشه انجا نبی بر اون مقدمه یجب اقلا انجا و برتکابل محرم و شد مقدمه این یک مورد مورد دیگه بحث ترجیح شدت محتمل ترجیح شدت محتمل شدت محتمل این یه مقوله است فقط بحث من من صدا رو قطع بفرمایید. ا خدمت شما کنم. کوه شدت محتمل ما عقل چی میگه؟ باید اهم خود اصلا تقدیم اهم گفتن که چیه؟ آقا این بعد مقدم بشه. مرحوم کوه کوه کمره‌ای، مرحوم سید محمد حجت کوه ای که در مدرسه حجتی دفن است مدرسه هم به اسم اشانه. مدرسه توسط مرحوم علامه تبا طبع طراحی شده به سبک جالبی داره قبر شریف هم در کنار مسجد همون داخل در واقعی که ساختمان جنب مسجد اونجا هست اتاقکی هست ایشان هم این نکته خیلی جالب داره که معمولا می فهمودن کسی حیلی مباحث فقی رو مرور می... اه... اه... حفظه مباحث علمی نکتش اینه که ایشان غیر از حالا استعدادی که داشتن چه و ولی اه... هر سه سالی بارشان درس های حوزوی رو از پایین تا بالا همه رو دوره میکردند. خب و نکته سنجایی خاص خودشون رو داشتن و به حال ویژگی های خاص خودشون اما این نکته درس آموزه برای ما مرحوم وجت گوه کمرهی رسول الله علیه ایشان اصل نه تنها اصل حفظ و تقدیم اهم را عقلی دانستند بلکه فرمودند در اصل این حکم بین مواردی که مهمتر, مهمتر بودن اهم اهم بودنش معلومه با اونجایی که محتمل از تفریق قائل نمیشن چه معلوم الاهمیه باشه چه محتمل الاهمیه اهمیت اینجا به اهم بودن نه به مهم بودن فارسی نگیرید معلوم الاهمیه و محتمل الاهمیه میگم فرقی نیست ولو اینکه تو مستاق شناسی ممکنه تعمل جداکایی ای نیاز داشته باشه اما در بحث صغروی اینجا تفکیق رو هست دارن هرچن ممکنه مثلا تو مصداق یه مورد رو شدت اهمیت رو شدت احتمال رو مختزیه تقدیم نبینن اما تو اینجا یه فقره دارن فقره طولانیه که من عرض کنم در این قسمت این موقع بحث رو جمع کنیم ببینید ما بین دو تا چیز باید تفکیق قایل بشیم یکی شدت احتمال. یکی چیه شدت محتمل تفکیک شدت اهمیت از شدت محتمل اینجا ایشان شدت محتمل رو تر... خب مرجه می دانند. خب ببینید شدت احتمال رو گفتن اینجا ما خلاصه یه مقدار گیر داریم ولی برای شدت محتمل سر جای خودش مطروب خانم خدمتش شدت محتمل مقدمه مرجهه اگر محتمل قوی تر بود اون محتمل اقوه رو مقدم کن شدت احتمال چی؟ نه نه شدت احتمال متفاوته ولی محتمل اگر اقوه بود اون رو شما مقدم کنید کتاب سید محمد حجت کوکن ولی مرحوم المهجت و فی تقریرات الحجه به او اصول الفقه خاطر حال اینجا نهند ولی خاطر است هست که تقریر مرحوم سید علیه ببخشید مرحوم علیه برادر بزرگتر مرحوم اطول صافیه که مرحوم شیخ علی صافی بودن خب اگر درست گفته باشم جلد دو صفحه دیویست و هفتاد و از سال سو انهو لوکان اهمیتن فل بین لوکان اهمیتن فل بین یه کنالعقل به حفظ الهم اصلا عقل میگه آقا اگر اهم و مهم داری عقل میگه اهم رو باید مقدم کنی مثل کجا؟ مثل جایی که دوران بین وجوب و حرمته ما عرض کرده بودیم همسه قسمه وجوب و وجوب حرام و حرام وجوب و حرمت الان تو این مورد می که اگر دوران بین وجوب و حرمت باشه در یک چیز مثلا اگر واجب القتل واجب باشه یکی از کفار رو بکشیم و اگر حرام باشه محرم القتل مثلا یه نبی باشه اینجا میفرماید که ما اون طرف حرمت رو به خاطر اهمیتش باید در نظر بگیریم عقل چنین حکمی می‌کنه فرقی نمیکنه اهمیت معلوم الاهمیت باشه یا محتمل الاهمیت چرا که ملک واحده بنابراین اگر در یه طرف اهمیتی باشه چه معلوم ال چه محتمل ال اهمیه عقل میگه باید اون معلوم ال یا محتمل ال رو حفظ کنی این کبراشه تو کبرا عقل اینجا حرفی نداره میگه که اهم رو باید مقدم کنی تا اینجای شیش خط تو خورده داره بخونم عبارات محتواش همینه از سالس انو ان لوکان اهمیتن فل بین یحکمال عقل به حفظ اهم این کبرا مثال میذاریم مثلا کان فی مورد دوران الامر بین الوجوب و الخرمه فشای شیء الواحد يدور الان فی ان لو کان الواجب قتل واحد من الکفر اونکه باید بکشی مش یک از کفاره و کان علی تقدیر الخرمه محرم قتل نبیان اگر حرام باشه اون مصدق حرام مثلا نبیان من الانبیا باشه فلح اقلا یحکن به حفظ طرف الحرمة باید اون حرمت رو مقدم کرد حالا یه قایده دیگه داریم در اول محصده اول هم جلوه یه لحظه خب این یه قایده است که یه قایده است که سنی ها معمولاً برجسته میکنن در علم اول افصد اولام جلب المنفه در میان فقرات بزرگواران شیعه من گشتن برحال میگن آقا به این کو کلیت هم و به این سعه نیست یه جاهایی محدوده حالا فرمایش اینجا که اینجا میگن خبراش و عقل قبول داره و عقل یحکم به طرف الحرماله اهمیته یعنی متاتون این مسلاقه علی اینو گفتن حالا ولو اینکه اون کبرای کلی رو که به اون لسان گفتم اینجا نگفتن ولی به اون یکی هم داره نزدیک میشه ولو فرق فی حفظ الاهمیه بین ما کانت الاهمیه معلومتا او کنا صرف احتمال معلوم الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه در هر صورت ملاک واحده و باید امر حفظ گردد لان ملاک فیهما واحدون واحد حال لو کان اهمیتا فی فی احد التلفیح حکم الاخذ به حفظا و هاذا حضب لا اشکال نفی من در محض مصداق داریم که یک شدت احتمال داریم یک شدت محتمل در این سغرا میفرمایند که انمال کنام فی محفهم سغرا فقیل فی فهم الامیه به وجوه الاول شدت الحتمال فی جانب بعد در این خدچه وارد میکنن خب در بعدی من یه لحظه بذاتی بعد بعدما قلنا في محله بعدم حجيه ظن الذي لم يقم على حجيه دليل فشدت الاحتمال ما اون قسمت برجسته و مهمتر رو برجسته میگم فشدت الاحتمال لا يوجب تقليب جانبن از شدت احتمال معیار ما نیست اما اون چی شدت محتمل چرا اون سر جاشه پس تو سغره ما تفکیت میکنیم نه هم لوکانت شده فی جانب المحتمل به منو انهو یدری انهو لوکانه ها زشی واجبا لکانه من الواجبات لتی حفظه اهم اگر برفرض واجب باشه از اون مصادیق اهمه فیح کنون عقل به ترجیه اگر واجب اگر بر فرض ما بدینم این واجبه لو کان هاذا شی واجب الا لكم من نمن الواجبات التي حفظها اهم من الجانب الاخر تو این مورد چی؟ میگه عقل حکم میکنه توانمندی داره فیهکم العقل بترجیع فعلاذا شدت و احتمال لا و ولكن شدت المحتمل فيها و فی و فیها و چون کما قلنا خب پس تفکیکی فرمودن در اینجا قبلا یه اشاره داشتم خدمت دوستان حاجهای علی دوست بزرگوار یه مقداری اینجا انقلتی دارن که آقا بعضی بزرگواران مثل مرحوم آقای خویی که میگن آقا بحث ملازمه اینار ما عقل و شهر و ایناره قبول داریم چرا تو سغرا خلاصه انقلت وارد میکن میگن آقا سغرا شد زیاد نمیشه بشناسیم پس یکی از مباحث مهم هم همین تظاهم دیگه خب تضاهم رو خیلی جاهش رو نقل میشینه عقل میشناسه آقا خواهشاً قبول کنید بیاد زیر بار برید اون حرفا رو بذارید کنار اینجا ما خلاصه باید بریم سراغ توانمندی عقل این رو نظر به مفهوم آقای خویی و شهید رو اینا مقداری وارد میکنه من عبارات ایشان را برای حفظ تقریر ایشان در نظر بگیرم بکنم. یه جایش و وسطش انداختم متصل میکنم ولی در متنسی خب اون زبایدی بوده هرچن خودشم طولانی طولانیه اگر فقیر را راهی به درک مناطات احکام و مساله نیست و به همین دلیل نباید بر اساس این درک ادعای به بپذیرد چگونه است که در تضامه احکام به او اجازه فهم و سنجش ملاکه و حکم به تقدیم یک طرف و تخیر دیگر داده میشود؟ اگر عقل به درک ملاکای احکام شر ندارد و از این رو فقیب استصلاح در استنباد و کشف احکام مجاز نیست و چرا در باب تضامن که مربوط به امتصال اجرای احکام مکشوفه است عقل توان درک ملاکای احکام شرع را دارد تا جایی که می به تقدیم امتصال برقی احکام نسبت نسبه برزی دیگر حکم کند و داوریان به حساب شاره گذاشته می شود من اینجا اله دمود شهیستت کنم. که محتویشانو من کامل فکرم هم همه این تضامن شد توی درآوردم. دارو معمولا نمیره سراغ این که بگه این اهم از اون مهم و این رو مقدم کن اتفاقا اول کار میره سراغ همون استظهارات مصادیقش از مصادیق اهم مهمه ولی معمولا اینشان میره یه طرف رو زن زمین یا مثلا میگه آقا این اطلاق نداره اون تقیید نداره یعنی معیارش رو قبول که استظهارات و قبل از اینکه این کلی بیا ببینیم ما الان با این الگویی که مقداری داریم مطرح می‌کنیم یک که ممکنه ابهام بشه بعد اون شفاف سازی رو اینجا در نظر بگیرید اون چیه ممکنه بعضیا فکر کنیم آقا ما میگیم اهم مهم عقلن میتونه دیگه خود نقل رو رها میکنن میگن آقا شار گفته اهم مهم این قسمت امروز ما تفصیل دادیم ولی بله این بود که آقا شر خلاصت رها نکنید همين زود ندید خودتون میگه عقل میتواند این هم از اون مهم است پس ما اینو مقدم کن اول ببین شهر چی میگه لذا تو موارد که از من منمره جستجو کردم در بووس که 4 جلده بود چند سال دست خارج شده تو بحث طهارت و ایناست دیگه نمیرا سراغ این مقوله‌ای که هر میگن اهم مثلا اینجوری اونجوری به هر حال عقل گراست اول میره ببینه خود دلیل اطلاق داره یا نه یه جایی مستانه میگه آقا این اصلا اطلاق نداره دیگه از هزه هم یه جوری خارجش میکنه تعروب میدن تحلیل مستانه حالا فرماش آقای علی دوست موتان اصلش رو مهلا نفت نمیخواه میکنه وقت جماع ما هم عقل رو میگی میشناسه موتان نه خیلی گتره ای مورد بعد این فقر که خاندم فقر ما صفحه 404 و 405 بود فقر بعدی همین کتاب تقوم استاد صفحه 688 و 689 حتی فقیهانی که در حصول قد برای عقل و حجیت درک آن تأمل دارند تحمل آنها در استنباط حکم شرعی است و الا آنجا که گفتگو از اجای احکام مکشوف و در واقع استنباط حکم الهی در وقت تضام مسائل مقتضیات است بس حضور عقل مجالی فراخ دادن اند میگه ها پس آقا شما که میگید ما عقل قبول نداریم یه ذره دوچاره تناقضید اونجا میگید کوه آیی خوی شما میگید بحث ملازمه کوهروش من قبول دارم سقرا کم داره یا نداره آقا خود شما بیه تو این مجال یه کمی تن به عقل بیشتر بدید ایشان میخوان راه فلسه حصول قد برای عقل و اینا رو بیشتر میدان بده و ویلی آنجا که گفتگو از اجرای احکام مکشوف و در واقع استنبات حکم الهی در وقت تزار مسئله مختزیرت است به حضور عقل مجالی فراخت دادن و حصول قرد به حکم شهری و بران مؤثر دانستن فقره دیگه که صفحه و 89 باز توی این قسمت از راه های وسیق و امین ترتیب به شرعه مساله درک قطعیه قطعی تاکید می آن. درک قطعی عقل اغلاست اعتماد به عقل در درک مساله و مراتب آن تا جایز که حتی برخی اصولیان که عقل را از درک مساله و مفاسد مورد نظر شار آجز می و سغرایی برای قانون کل ما حکم بهشن به نمی شناسند منظور آی خویی در محاضرات جلد سه صفحه افتاد در مسبا جلد سه صفحه سی و چار و یه جوری ارتای فصول اینا هم خلاصه می میتوانه به اینجا هم نزدیک باشه و حالا بعضی ما وارد دیگه میگن که این افراد اعتماد مزبور رو می‌پذیرن تو نساخ شناسی برای تزاوم و در زمان تزاوم ملاک احکام عقل و حاکم در لزوم عقل به اهم و قادر به تشخیص بر تشخیص اهم و تمزیان از مهم می‌دانند یه مقدار میگه حالا شاید هم بگیم که آقا تو کتابی کوتابیا شما چطور تو تزاوم دارید می‌گیرید تو اون ملازمات عقل و شرم بیا اونجا ممکن برای اونجا استفاده بگیم بیشتر دارن می‌کنن بعد اشکال به آقای خویی و اینا که به هر حال دارند و میگن که خلاصه خب حالا از اون ور از منظر کسان دیگه به هر حال یه مقداری اگر امر یه چیزی بخوره امر و نهی اک موردی امر و نهی بخوره خب ما میفهمیم مسلحت و اینا وجود داره و اون تضاهمه خلاصه حکمی رو میفهمیم و از این بر یه فقله دیگه اینجا هست کنم پس اینم توجه بکنیم تضاهم در ملاکات تضاهم در احکام هم در نظر داشته باشید ایشان این جمله میارن در اینجا یعنی در تضاهم احکام به حکم قاطع بعد اهم را مقدم کرد این کبرا و یکی از راه های تشخیص اهم از مهم یعنی سخرا همون درک اقل است، برخلاف مورد اول یعنی تضاهم ملاکات اشان به این پس عرض کردم ما تفکیه که تضاهم ملاکی و تلزاهم حکمی رو داشته باشید میخواین اینجا یه جوری تل... یه ذره تره بست بفرمه میگن تضاهم احکام رو کبراش رو عقل میفهمه در اینجا یعنی در تضاهم احکام به حکم عقل، قاطع عقل باید اهم رو مقدم که این کبرا نصاقش حالا سخرا و یکی از راه‌های تشخیص عم از مهم صغ سخ... یعنی صغره همون درک عقل بر مورد اول یعنی تضامم ملاقات که تشریع و تعین فعل بر عهده قانون گذار بود در اینجا یعنی در تضامم احکام انتخاب بر عهده مکلفه انتخابم در واقع یعنی تشخیص به نظر نگارنده آنچه چه عرصه را برای سخن تنگ می‌کند این است که اگر اعتمادی به درک عقل وی در قسمت نخست یعنی تضامم ملاقات نیست و بر صاحب خرد است که منتظر تشریع الهی باشد چگونه است که به همین عقل در قسم دوم یعنی تزام در احکام امتصال اعتماد می شود و انان کبرا و سقرا یعنی تقدیم اهم مهم لزومش و تشخیصش به وی سپرده می شود مصفیلی الان یه جوری می از اینجا بول بگیره و یه حمایتی بگیره برای اون حکم شناسی ها و الان تو بحث تظام از اقاین میاره که عقل میتوانه میخواه برای اون بحث استنبات به یه مقدار مجال عقل را اشان تو بحث استنباتات اینو باز کنه حالا بعضی از اناوین دیگه هم در این راستا به کار میبرن عرف یا مثلا استصلاح اون هم بعد جاهایی به کار میبرن میفرمایند که تعین تکلیف مزبور یعنی حکم به ترجیح اهم بر مهم در تضام تعین تکلیف مزبور یک حکم جدید شریعی است که به دلیل تضام با اتقاب اخصاده شده حال اگر مکلف چه مشته چه مقلط قادر به این درک است و این درک اعتبار شریعی دارد که حقم هم همین است زیر قاطب ملاک حکم می است پس هرگاه در تضام ملاک هم به چونین قطی رسید باید درک وی سند برای استار حکم شرعی باشد خب این میخواب استنباط حکم رو با اقلی بکنه این سخن که عقل در تضام احکام به قتل میرسد و در تضام ملاکا به چون قطعی نبسه هرچند فل جمله سری صحیح است خودش قبول داره ها لکن کلیت آن نه علمی است و نه صحیح یه جای گیر رو میپذیره ولی میگه آقا کمی دارش دارهشو وسیعت تر کن علمی نیست چون تعین گزاره کلی برای همگان در این مورد به هیچ سندی متکی نیست و صحیح نیست چون موارد نقد بسیار دارد به هر حال آنچه چه صیبی نظر میسر این است اعتماد بر ملاک مصلحت قطعی و مورد نظر شاره در فتوا و بدون قطع ناسعی است فرقی هم بین تزا ملاک و احکام نیست معیار قط است و نه چیز دیگه البته پاسخ باید بعد میتوان داد خلاصه مثلا این نیست که همه اون شناخت ها شناخت عموم هایی که جو در نظرش بود همش با عقل باشه بلکه دلیل غیر عقل و اینا هم داریم دوم این که یه جوری این توانمندی عقل خلاصه مطلق نیست ممکنه تو تضاهم ها یه ویژگی های باشه ولی لزومن تو اون بحث تشخیص احکام بعضی از اینا نباشه و یه مسئله مهم اینه که ببین کشف احکام از طریق کشف مساله میتوانه نقطه ثوم که در حد کشف مقتضی باشه ولی کشف مانه هم داریم دیگه بعد مانه هم نباشه بخش کشف عدم مانه و اینا هم باید لحاظ بشه و بعضی ویژگی های دیگه حالا توانمندی عقل و نتوانیش رو به هر حال مثلا بعضی بزرگوان که قبول دارن به محدود قبول دارن لذا این طرف که آقای علی دوست میگه تو تظام میگن آقا مگر آ تو تظام آقای خویی مطلق گفته درسته که اینجا مثلا عقلیه ولی نگفت که عقلم اینجا وسیعه که شما باید تمسک کنید بگید که باز اگه اینجا تمسک میکنید در کشف احکام هم استفاده کنید آقا اینجا هم محدوده اگه اینجا محدوده با اونجا هم سازگاری داره اونجا هم محدوده حالا این ها نکاتیه که من از عبارت آقای خویی هم آوردم حالا بعد میتوانم بعد جلسه بعد چون این قسمت مهمه این را عرض بکنم از عبارت مرحوم آقای خویی سلامت و بسا مرحبا اللهم